سورة الروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غ الله که بخش گنده و با رحمت است می رومیان شکست خودند و این شکست در سرزمین نزدیکی روی داد اما آنها بعد از آن به زودی پیروز خواهند شد در ظرف چند سال بدانید تمام کارها به دست خداست چه قبل چه بعد از این شکست و پیروزی و در آن روز اهل ایمان خوشحال خواهند شد به یاری الهی خداوند هر که را صلاح بداند یاری خواهد کرد و او قدرتمند و با رحمت است این وعده الهی است و خداوند هرگز از وعده خیش تخلف نمی کند ولی اکثر مردم نمی دانند آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را درک می کنند و از آخرت قافل و بیخبرند آیا آنها با خود فکر نکردند که خداوند آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست جز به حق نکرده است؟ آن هم تا زمانی معین بدانید که بسیاری از مردم به دیدار پروردگارشان کافرند آیا در زمین سیر نمی کنند؟ تا ببینند آقبت کسانی که قبل از آنها زندگی کردهاند چگونه بوده است آنها نیرومندتر بودند و زمین را دگرگون کردند و بیش از آن چه که اینان آباد نمودند عمران ساختند و پیامبرانشان هم با دلایلی روشن به سوگشان آمدند بدانید که خداوند با آنها ظلم نکرد بلکه این خود آنها بودند که به خیشتم ستم روا داشتند. آقابت سو سرانجام کسانی بود که عمل کرده بدی داشتند زیرا آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به استهزا گرفتند خداوند آفرینش را آغاز می کند و دوباره آنها را زنده بر می انگیزد. سپس همگی به سوی او باز گشت روزی که قیامت بر شود مجرمان در غم و اندوه فرو هیچ کدام از معبودان دروغینشان به عنوان شفی برایشان کارساز نیست و سرانجام نسبت به این تکیگاه های دروغین کافر می شوند. روزی که قیامت در آن روز از یک دیگر جدا می شوند. اما کسانی که ایمان آوردند و عمل کردی نیک و شایسته داشتند در باغی از بهشت شادمان و مسرورند. و اما کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند همه در عذاب الهی حاضر می‌گردند. خداوند را تصویح نمایید آنگاه که به شب و یا به صبح در می آیید در آسمان ها و زمین از آن اوست چه انگام عصر و چه که به زور در می یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و تخرجون. او زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می کند و زمین مرده را حیات می‌بخشد و این چونین در روز قیامت بیرون آورده میشوید از نشانهایش این است که شما را از خاک خلق کرده و بشر شدید و در زمین پراکنده گشتید از نشانهایش این است که برای شما همسرانی از جنس خودتان بیافرید تا در کنارشان آرام گیرید و میان شما مودت و رحمت برقرار کرد در تمام اینها برای اهل تفکر نشانه‌هایی است از نشانهایش آفرینش آسمان ها و زمین و نیز تفاوت زبان و رنگ های شماست در همه اینها نیز برای اهل دانش نشانههایی است. از نشانهایش خوابیدن شما در شب و روز است و نیز هنگامی که از فضل او روزی طلب می کنید. در همه اینها برای کسانی که گوش شنوا دارند نشانههایی است. و از نشانهایش این است که برق آسمان را به شما نشان میدهد که هم امید است برای آمدن باران، به هم باعث ترس و وحشت شماست به خاطر سیه های مرگوار خدا از آسمان آبی نازل می کند تا به واسطه آن زمین مرده را زنده گرداند در اینها نیز برای خردمندان نشانهایی است و از نشانهایش این است که آسمان و زمین به فرمان او پاور جا هستند سرانجام وقتی شما را در روز قیامت از زمین فرا بخاند همه از قبرها خارج می شدید هر که در آسمان ها و زمین است از آن اوست همه مطیع و فرمان بردار او یند او کسی است که مخلوقات را آفرید سپس آنها را باز میگرداند و این کار برای او آسمتر است بدانی صفت برترین در آسمان ها و زمین از آن اوست و او قدرتمند و حکیم است خداوند مثلی برایتان از خودتان میزند مگر مملوک‌هایتان در نعمتها و رزخایی که به شما عطا کردیم شریک میباشند که نصیب و بهرتان با هم مساوی باشد. تا همچنان که از شرکای آزادتان بیمناک هستید از آنها هم بیمناک باشید ما اینچنین آیات را برای خردمندان شعر میدهی قطعا کسانی که ظلم میکنند بدون آگاهی از هواهای نفسانیشان پیروی میکنند پس چه کسی میتواند آن کس را که خدا در گمراهی گذاشته هدایت نماید حالان که آنها هیچ یاوری نخواهند داشت فاقیم الدین حنیفه فطرت الله التي فطر الناس لا تبدیل لخلق الله به و تسلیم شدن در برابر حق روی بیاور این فطرتی است که خداوند انسانها را بران آفریده است و آفرینش خدا تبدیل نگردند این دین پابرجاست هرچند اکثر مردم از آن بیخبرند به سوی او بازگردید و حرمتش نگهدارید و نماز به جا آورید و از مشرکان نباشید از آنها نباشید که دینشان را فرقه فرقه کردند و خود به دستهای مختلف تقسیم شدند بدانید هر گروهی به آنچه که نزدشانه است دلخوش گردند هنگامی که به انسانها آسی رسد، به زاری خدایشان را می و به سوی او باز می گردند. و وقتی خدا رحمت خود را به آنها میچشاند، گروهی از آنان را میبینی که باز به پروردگارشان شرک میورند. بگذار نعمتهایی که به آنها ارزانی داشتیم کفران کنند اکنون لذت ببرید و بهرهمند باشید به زودی حراویق را خواهید فهمید آیا؟ برای آنها دلیلی نازل کرده ایم که از شرکشان سخن بگوید و عمل را توجیه کند هنگامی که رحمتی را به مردم بچشانیم به آن شادمان می شوند اما هنگامی که به خاطر دستاوردشان مصیبتی به آنها برسد ناگهان همه ناامید می شوند آیا نمی بینند خداوند روزی هر که را صلاح بداند فراوان می دهد و یا تنگ می گیرد براستی در این نکته نشانهایی برای اهل ایمان است حق نزدیکان و مسکینان و در راه مندگان را ادا کن بدان که این کار برای کسانی که رضایت خدا را میطلبند از هر کار دیگری بهتر است براستی اینها هستند که راستگارند آنچرا به عنوان ربا میپردازید تا انوال مردم زیادتر شود بدانید که نزد خداوند افزایش نمی‌یابد، اما آنچرا به عنوان زکات به خاطر رضایت خداوند پرداخت می‌نمایید، چون این کسانی دارای پاداش مزعف خواهند بود. خدا است که شما را آفرید سپس روزیتان داد آنگاه شما را می, می و دوباره زنده می کند. آیا شریکانی که برای خداوند قائل شده ای توانایی انجام چیزی از این کارها را دارند منزه است او و بلند مرتبه تر از شریکانی است که قائل می شوند فساد و تباهی که در خشکی و دریا نمایان شده است نتیجه عملکرد مردم است خداوند میخواهد خواهد جزای بعضی از عملکردهایشان را به آنها بچشاند شاید به راه حق برگردند بگو در زمین سیر کنید و ببینید عاقبت گذشتگان که اکثرشان مشرک بودند چه بوده است روی خود را سوی دین پایدار بدار آن هم قبل از آن که روزی فرابرسد که هیچ کس توان دفعش را در برابر خداوند نداشته باشد مردم در آن روز گروههایی شوند کسانی که به حقایق کافر شدند کفرشان به زیانشان است و کسانی که عمل کرده نیک و شایسته داشتند برای خیش پاداشی نیکو معیانه بودند تا خدا کسانی را که به حقایق ایمان آوردند و عمل شایسته و نیک داشتند از فضل و کرمش پاداش داد زیرا او منکران حقیقت را دوست ندارد از نشانهایش این است که بادهای مجدرسان را میفرستد فرستد تا از رحمتش به شما بچش و کشتی ها به فرمانش حرکت کنند و شما از فضل او روزی طلب کنید شاید سپاس گذار نعمت هایش ما قبل از تو پیانبرانی را به سوی قومشان فرستادیم و آنها دلایل آشکار را برایشان آوردند سرانجام از مجرمانشان انتقام گرفتی حالان که یاری کردن اهل ایمان حقی است که بر عهده ماست این خداست که بادها را میترستد تا ابرها را به حرکت در آورد سپس آنطور که بخواهد در آسمان بگستر آمد و متروکه کند به سان باران را میبینی که از لابلای آنها بیرون میزند و انگامی که آن را و هر کس از بندگانش که سلام بداند میرساند آنها هم شاطمان میگردند. گردند که پیش از این نزول همشان معیوس بودند فانگر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها این ذلك لمحیی الموتا هم والا به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین مرده را زندگی میبخشد چون این خدای زنده کننده مردگان است و او بر هر کاری توانا اگر بادی مخرب را بفرستیم که بر اثر آن مزارعشان را زرد و پژمرده ببینند از آن پس به کفر روی می آورند تو نمی توانی مردگان را شنوا کنی همچنان که نمی توانی سخنت را به گوش کرانی که روی برگرداندند برسانی و نیز نمی توانی کسانی را که نسبت به حقایق کورند از گمراهی به راه هدایت برگردانی تو تنها می توانی سخن خود را به کسانی که به آیات ما ایمان دارند و سراپا تسلیم حق هستند برسانی. این خداست که ابتدا شما را ناتوان و ضعیف خلق کرد سپس بعد از ناتوانی نیرومندتان کرد دوباره پس از نیرومندی ضعیف و پیرتان کرد بدانید خدا آنچه به خلق می کند و او آگاه و قدرتمند است هنگامی که قیامت برپا شود مجرمان قسم می‌خورند که جز ساعتی در گور درنگ نکردند همین گونه نیز از حق منحرف می شود. و کسانی که به آنها دانش و ایمان داده شده میگویند: شما طبق کتاب خدا تا روز قیامت درنگ کردید اما شما درک نمیکردید و امروز روز قیامت است در این روز معذرت خواهی کسانی که ظلم کردهاند سودی نبخشد و توبهشان پذیرفته نمی شود براستی در این قرآن برای روشن شدن مردم هر مثلی را آوردید چنانچه آقیهی برایشان بیاوری کافران گویند شما فقط یاوه میگویید گوید به خداوند قلبهای کسانی را که از آگاهی بی بهرهند مور می صبر و استقامت کن وعده الهی حق است مبادا آنها که از یقین بی بهرهند تو را بی ثبات نمایند فاصبر این وعد الله حق ولا يستخفنك يستخفنک لا يوقنون صدق الله العلي العظيم